فصل دوم، تسلی بخشی در مباجه با کمپولی بخش اول، خوشبختی، فهرستی از دارایی‌های های لازم یک خانه نوکلاسیک متعلق به اصر پادشاهی جورج واقع در مرکز لندن چلسا در پارادایز واک، میدان مارکهام. کنزینگتون در بخش جنوبی کمدن رود، خیابان هورنتون. هلن پارک در ابری رود. در ظاهر شبیه به نقشه نمای جلویی انجامان سلطنتی هنرها که به دست برادران آدامز طراحی شده در سال 1772 تا 1774. برای جذب نور زعیف بعد از ظهرهای لندن، پنجرهای بزرگ ونیزی با ورقه های یونی پوشانیده شده است. و زمینه سنتوری سگوش قوسی شکلی با نقوش برجسته حجاری دارد. در طبقه اول، اتاق پذیرایی یک تاق و یک شمینه شبیه طرح رابرت آدامز برای کتابخانه کنوود هاوس. دو هواپیمای جت که در فارنبورو یا بیگین هیل قرار دارد. داسو فالکون 900 یا گلف استریم 4 که از تجهیزات الکترو هوانوردی برای خلبان عصبی، سیستم هشدار نزدیکی به زمین رادار طوفانیاب و هدایتگر خودکار برخوردار است بر روی باله دوم هواپیما به عنوان جایگزین نوارهای متداول تصویری از طبیعت بیجان یک ماهی اثر ولاسکز یا سلیمو اثر سانچز کوتان برگرفته از تابلوی میوه و سبزیها در موزه پرادا در مادرید سه ویلای اورستی واقع در مارلیا نزدیک لوکا از اتاق خواب می توان آب را دید و صدای چشمه ها را شنید در عقب خانه، مگنولیا دلاوایی که در طول دیوار رشد می کند بهارخوابی برای زمستان، درختی بزرگ برای تابستان و زمین چمنی برای بازی و باغ های مسقف پر از انجیر و شلیل و سروهای قائم و ردیف های استقدوس و درختان پرتقال و یک باغ زیتون چهار کتابخانه‌ای با میزی بزرگ شمینه و چشمندازی روبه به باغ های اولیه همراه با بوی خوش کتاب های قدیمی صفحه های زرد و زبر بر بالای قفصه ها مجسمه های اندیشمندان بزرگ و گوی های طالبینی شبیه طرح کتابخانه خانه ویلیام سوم پادشاه هلند 5 اتاق غذاخوری شبیه اتاق غذاخوری بلتون هاوز در لینکلن شایر میز بلوتی بلند دوازده نفره اغلب اوقات شام با همان دوستان قبلی گفتگوهای هوشمندانه ولی برای شوخی و تفریح همیشه سرشار از مهربانی آشپزی خوشفکر و خدمتکارانی با ملاحظه که هر گونه مشکل اجرایی را برطرف می کنند. آشپز در تبخه پنکیک کدو، تارت همراه با ریزهای سفید، سوپ ماهی، پولوی ایتالیایی بلدرچین، دوره ماهی و مرق بریان ماهر است. اتاق پذیرایی کوچکی برای رفع خستگی با چای و شکلات. شش تختخوابی که در تاغچه‌ای توی دیوار قرار دارد. شبیه تختخواب ژان فرانسوا بلوندل در پاریس. ملافه های آهار خورده که هر روز عوض می شوند و برای صورت سرمایه مطبوعی دارند. تخت بزرگ است. انگشت های پا به انتهای آن نمی رسند. می توان با لذت در آن غلط زد. قفسه های خالی برای آب و بیسکویت و تلویزیون. هفت حمامی بزرگ با وانی در وسط بر روی سکویی ساخته شده از مرمر با ترهای گوشماهی کوبالتی آبی. شیرهایی که میتوان با کف پا باز کرد و آب را به صورت جریانی ملایم و مداوم آزاد می کنند پنجره‌ای سقفی که از حمام قابل مشاهده است. کف حمام از سنگ آهک حرارت دیده پوشانده شده است. روی دیوارها نسخه های کپی دیوارنگاره های معبد ایزیز و پمپه ای آویزان است. هشت پول کافی که به شخص اجازه می دهد با به بهره بهره پولش زندگی کنند. نو برای تعطیلات آخر هفته، یک آپارتمان پنت واقع بر بام ایل دولاسیته که با قطعاتی از شکوهمندترین دوره اسباب و اساسیه فرانسوی و دوره ضعیفترین حکومت فرانسوی یعنی دوره پادشاهی لوی شانزدهم هم شده است. گنجه کشایی مربعی شکلی اثر گربنیچ میزی اثر سونیه کمدی اثر واندرکروز لکروه صبح های با تنبلی و مطالعه مجله پاریسکوب در تخت خواب خوردن شکلات در چینی آلات محسود سفر و گپ زدن هستی با صورت تناسخ یافته از مادونای جیووانی بلینی این تابلو در گالریا دل در ونیز وجود دارد یعنی زنی که حالت اندوهگین و سودازدش حس شوخ طبعی و صرافت طبع او را می پوشن. کسی که برای پیاده روی در خیابان ماره لباس مارک اگنس بی و ماکس مارا را